گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد سلام شب شما به خیر و شاد کامی. های ایرانی نقاشی دقیقیه از اونچه تیه تاریخ بر مردم سرزمین ما گذشته. های ایرانی از کهنترین های ادبیات شفاهی ایران زمینن که تفکر و تخیل مردمان کشورمون رو در قالبی روان و ساده بیان میکنن و در اونها نکات ارزشمند زیادی وجود داره. که ایرانی آه رو براتون تعریف میکنم. برگرفته از کتاب ایران آشغانه به روایت خاطره هجازی امیدوارم از شنیدن این افثانی زیبای ایرانی لذت ببرید در روزگاران خیلی قدیم تاجری زندگی میکرد که سه تا دختر داشت. روزی از روزها تاجر میخواست برای تجارت به شهر دیگه بره بنابراین رو کرد به دختراش و گفت دخترای من هرچی دلتون میخواد بگید تا براتون سوقت بیارم دختر اولی گفت من یه پیرهن خیلی زیبا میخوام دختر دومی گفت من یه جفت جوراب زیبا میخوام و دختر کوچیکتر گفت من من زیباترین گل دنیا رو میخوام که اونو به موهام بزنم تاجر رفت پی کسب و کارشو وقت برگشتن پیراهن و جراب و خرید اما یادش رفت برای دختر کوچیکش گل سوقات بیاره تاجر وقتی به خونه برگشت با دیدن دختر کوچکش تازه یادش اومد که فراموش کرده برای دختر تاتاواریش گل بخره تاجر از شدت ناراحتی آه کشید در این موقع صدای در خونه بلند شد و تاجر رفت و درو باز کرد غریبه ای دم در ایستاده بود تاجر با تعجب پرسید تو کی هستی با کی کار داری غریبه گفت من آه هستم برا دختر کوچیکتون گل آوردم تاجر خوشحال شد گل رو گرفت و اونو داد به دختر کوچیکش دختر دید عجب گل قشنگیه فورا اونو زد به مواش چند روز بعد باز در زدن تاجر رفت و در باز کرد. دید همون مرد غریبه دمی در ایستاده تاجر با تعجب پرسید این دفعه چی آوردی؟ مرد غریبه یا همون آه گفت اومدم صاحب گل را ببرم تاجر به فکر فرو رفت نمیدونست چیکار کنه و آقابت گفت جناب آه بیا و از این کار بکسر. اما آه اصرار کرد و اصرار تا بالاخره مرد تاجر دختر کوچیکش رو به دست آه داد آه هم چشمای دختر رو بست و او نشون ترک اسبش را افتاد و رفت دختر و فوراً به باغ بزرگی برد. باغی که از لاگه هر گل و هر بوته آوازی به گوش میاسید. دختر با تعجب پرسید اینجا کجاست آه جواب داد اینجا خونه تو چند روزی که گذشت دختر دلش برای پدر و خواهرش تنگ شد و از دلتنگی آه کشید آه اومد و پرسید چرا آه کشیدی؟ دختر گفت دلم برای پدر و خواهرام تنگ شده آه گفت ناراحت نباش فردا میبرمت دیدن پدر و خواهرات روز بعد آه چشم دختر رو بست اونو نشون ترک اسبشو شو را افتاد به طرف خونه یه مرد تاجر. بعد چشمه دختر رو باز کرد و گفت فردا میام دنبالت بعد خودش رفت دختر بعد از سلام و احوال پرسی با پدر و خواهرانش بونا گفت که توی یه باغ بزرگ زیبا زندگی میکنه و کارش فقط خوردن و خابیدنه پدرش گفت دخترم حتما کاسهی زیر نیم کاسه است بگو ببینم چپا قبل از خواب چه چیزی بهت میده بخوری دختر گفت فقط یه استکان چای پدر گفت دخترم یه شب چای رو نخور و انگشت تو زخمی کن و روش نمد به که خوابت نبره اون وقت ببین چی پیش میاد فردای اون روز آه به سراغ دختر اومد و اونو با خودش به باغ بود همین که شب شد و دختر خواست به آه براش یه استکان چای آورد دختر چای و یواشکی ریخت زیر گلدون بعد انگشتش رو زخمین کرد و روش نمک باشید و خودش رو به خواب زد نصف شب صدای پا شنید زیچشمین نگاه کرد دید آه فانوس به دست داره میاد و بر جوانی که خیلی زیبا و خوشقد و بالاست راه رو نشون میده جوون نزدیک دختر که رسید از آه پرسید امروز حال خانم چطور بود؟ چایشو خورد و خبید؟ آه گفت بله آقا جوون سریده کنداد در این موقع دختر طاقت نیاورد و پا شد نشست و گفت این آقا چیه؟ آه خاص چیزی بگه که جوون با متانت و ادب گفت من همسر و صاحب اختیار تو هستم دختر هاج و که چی بگه و چیکار کنه؟ جوون گفت من میرم و فردا اول وقت میام تا با هم به باغ گل سرخ بریم میخوام صبحونه رو اونجا با هم بخوریم و بعد به سرعت از اونجا دور شد آ هم با فانوس به دونالش به دا صبح زور جوون به دنبال دختر اومد و اونو به باغ گل سور بود باغی که زبان از وصفش آجزه و فقط دوته چشم خواد که تماشاش کنه همه جا پر بود از گلهای زیبا و رنگارنگ دختر که محوه تماشای گلها بود به شاخ گلی نزدیک شد و خواست گلی بچینه و اونو بو کنه اما دستش به شاخ گل نرسید جوون گل چید و به دست دختر داد دختر دید که به لباس جوون پر کوچکی چسبیده آروم آروم دست برد و پر رو برداشت که یهو یه هوا تیره و تار شد و دختر بیهوش افتاد وسط باغ وقتی چشم باز کرد دید از باغ زیبا و پرگل خبری نبود و جوون هم مرده بود دختر از و ناراحتی آه کشید و در این زمان آه ظاهر شد دختر گفت برای من یه دست لباس سیاه بیار آه رفت و برای دختر یه دست لباس سیاه آورد. دختر نشست بالای سر جوان و قدر قرآن خوند و اشک ریخت که خسته شد و آخر سر که دید فایده ای نداره به آه گفت منو به بازار ببرم و به عنوان کنیز بفرش آهم دختر رو به بازار برد و به عنوان کنیز به خانواده ای فور. دختر بعد از یکی دو روز پی برد توی خونه صاحبش همه سیاه پوش و غمگین و ناراحتن وقتی علت رو پرسید کنیزی گفت از وقتی پسر جوان و یکی یه دونه خانم گم شده همه لباس سیاه می پوشیم دختر یاد شوهر خودش افتاد و آهی کشید و رفت توی اتاقش تا بخوابه ولی هر کرد خوابش نباید رفت توی حیات تا کمی هوا بخوره. دید دایه پسر گم شده یه صاحب فانوسی برداشته و بی سر و صدا بیرون رفت. دختر از روی کنجکاوی گفت خدای من ببینم این دایه نسو شبی کجا میخواد بره؟ و آهسته به دنبال دایه بر افتاد. دایه از چند حیات تو در تو گذشت تا به حوزی رسید. تخت سنگی رو که روی حوز قرار داشت کنار زد و از پلکان زیر تخت سنگ رفت با اینو به زیر زمینی رسید که در اون زیرزمین زمین پسر جوانی به چارمیخ کشیده شده بود. دایه به پسر گفت فکراتو کردی؟ حرفم رو قبول میکنی یا نه؟ پسر به سراحت جواب داد نه، نه، نه دایه حرفش رو دوباره و سباره تکرار کرد و پسر باز هم قبول نکرد دایه عصبانی شد با شلاغ به جون جوون افتاد بعد با شاب پولایی رو که آورده بود به زور به پسر خوروند و خاص برگرده که دختر قبل از اون براف داد. برگشت خونه و رفت سر جاش دراز کشید و خودشو به خواب زد دختر صبح زود پا شد رفت پیش یکی از کنیزا و گفت دیشب خوابی دیدم که می ترسم اگه خانم اونو بشنوه از خوشحالی قش کنه حرف دختر دهن به دهن توی خونه پیچید و به گوش خانم خونه رسید خانم هم دختره رو صدا زد و گفت بیا ببینم دیشب چه خوابی دیدی که می ترسی اونو برای من تعریف کنی دختر گفت خانم جان دنبال من بیا تا براتون تعریف کنم افتادند از چند حیات تو در تو گذشتند تا به حوز رسیدند تخت سنگی که روی حوز قرار داشت برداشتن و از پلکان زیر زمین تخت سنگ رفتن پایین پسر با شنیدن صدای پای اونها به تصور که دای باز به سراغش اومده فریاد زد دایه لعنتی دایه لعنتی شب اومدن است که روزم اومدی؟ خانم صدای پسرشو شناخت و تند دوید و رفت پسرش پسرشو در آغوش کشید دختر گفت خانم جان این همون پسریه که تو خواب دیدم خلاصه پسر رو از چارمیخ آزاد کردن پسر هم برای اونا تعریف کرد که دایه چجوری اونو به زیر زمین برده و به چارمیخش کشیده در این موقع در خونه به صدا در اومد خانم گفت برید، برید در و باز کنید، حتی درم دایه اومده کنیزی رفت و در رو به روی دایه باز کرد دایه به محض ورودش بخونه با توپ و تشر به نوکرها و کنیزها گفت کدوم گوری بودین که زود نیومدین درو باز کنین؟ یه ساعته که دارم در میزنم و یه دفعه چشش به پسر افتاد رنگ از رخسارش پرید و مات و مپوت موند خانم دستور داد دایر رو به چارمیخ بکشن. همونطوری که اون پسرشو به چارمیخ کشیده بود. بعد رو کرد به دختر گفت دخترم تو در حق من و پسرم لطف زیادی کردی. زندگی پسرمو نجات دادی. کاش کاش عروس این خونه می شدی. دختر به خانم خونه گفت خانم جان من من شوهر دارم. بعد ماجرای زندگیشو برای خانم و پسرش تعریف کرد. خانم از شنیدن سرگذشت دختر خیلی متاسف شد و به اون گفت: خیلی متاسفم دختر تو از این لحظه آزادی و میتونی بری دنبال سر و بعد از توی صندوق یه پر و یه شیشه ی روغن به دختر داد و گفت: با این پر و روغن میتونی شوهرتو دوباره زنده کنی دختر با خوشحالی گفت واقعا من من من میتونم با این پر و روغن شوهرمو زنده کنم چجوری؟ خانم گفت با این پر کمی روغن به زیر بقل شوهرت بمال، اون وقت شوهرت عطسی میکنه و دوباره زنده میشه دختر با خوشحالی از خانوم و پسرش سپاس گذاری کرد و فوراً آ کشید. در این لحظه آه در مقابلش ظاهر شد و گفت بله خانم کاری داشتین؟ دختر پرسید از شوهرم چه خبر؟ آه با ناراحتی گفت همونطوری که دیده بودی مثل سنگ افتاده و از جا تکون نمیداره. دختر با خوشحالی گفت منو ببر بالا سرش منو ببر آه در یه چشم هم زدن دختر رو به همون باغی که شوهرش در اونجا افتاده بود برد دختر هم فوراً قوطی رو آورد و با پر روغن به زیر بغل شوهرش مالید شوهرش عطسی کرد پا شد و نشست با زنده شدن مرد درختها باز گل دادند و شوف نمایان شدند و پرنده ها شروع کردند به آواوسوندن. از اون روز به بعد دختر و شوهرش زندگی تازه رو آغاز کردند. افثانه ایرانی آه رو به روایت خاطره هجازی برگرفته از کتاب ایران و آشغانه براتون نخ کردم افسانهها ها سند از تخیلات و باورهای قومی و دینی مردمان هر سرزمینن. بهترین نویسندگان و هنرمندان جهان اونایی هستند که از افسانهها ها و زندگی مردم الهام گرفتند امیدوارم افسانهای رو که در کودکی از پدر و مادر شنیدید هیچ وقت فراموش نکنید هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالح استار بهار ویام اجرا مهران دوستی صدا حسین اولیاوش تکی کننده زهرا عبدالله زاده افثانی دیگر بدرود